معنی اللهم افتح لنا ونجنا من الشر. شد که مرحوم شیخ اول رو در تفسیر به اصطلاح غیبت قرار دادن امر اول رو و متعرض کلمات شدن بعد یک قول خودشون یک ملخصی در این صفحه و طور که مرموم آقای گویی هم متعرض شدن ایشون هم بعضی از موارد رو متعرض شدن که آقای دوزه افراد قیبت هست یا نه دیگه اسمتهایش خود آقای مراجعه بکنم من فرد جمبدی مطلب رو تا اینجا بکنم. عرض بکنم ارزد که ظاهر آیه مبارکه و لایختب بعض کم بعضا این از که این اقتیاب لاقل مفهوم و عرفی داره و اشتن بو کسی را منوان این برزن نه اسمون و لا و لایختن برزن بعضا ایوه بو احدا کن یک لحمه اخیه میتن از کردیم بعض شعر عربی هم هست که لحمه اخیه رو خوردن مثل ریبت آمده در قبلت قرآن اما کلمه میتن هم کردیم توضیحاتی تفسیراتی شده توضیحاتی شده هنوزون وصوق اطمینان تمامی چون مفاهیب قرآنی گاهیگاره یک عظمت و روی هستن که ممکن هزار سال در روی باز انسان باز مطلب جهیدی انسان بفهمه باز دویسی سه سال, سال بعد مطلب جهیدی دست بیاند هر کردیم متعارف در زیل کلمه میتن نوشتن همچنان که شخص خایره نصر میتی مونه این رو گفتن در اون روایتی که خوندیم به سلمان که اون دو نفر اولی دومی قیبتش کردن چون داره که وقتی که سلمان خوابیده در روات این طور داره قیبتش کردن در حال خواب بعضی از ربارت داره که میتن به معنی این این خواب بود سلمان خواب چون بولا. این هم ما داریم خب خیلی بریده این که این مراد این باشه یک توجیه دیگری هم در عده از کلمات آمده که شاید بعدش هم روایت باشه از صحابه از از تابعین و حاصلش اینه که مراد از میتن مراد در این آیه واریه تجسم عمل به لحاظ روز قیامت نه در دنیا یعنی همچنان که شما در دنیا گوش برادرشو نمیخورید این غیبت در روز قیامت به این عنوانه که شما گوش برادر مرده رو خوردید مرده به لحاظ روز قیامت به لحاظ تجسم عمل احتمالاً از عرض کردم مشهورتر همون تفسیر اوله که قاعد بودنش رو به منزله یه مریت گرفته دو تفسیر دیگه هم روز یک اصول کامل کاملی که انسان بگه مراد جدی آیه این ظاهره هست مفاهمیست که باید انشاءالله نه تدریجا روشن بشه الله یا احتمالات دیگه داده بشه این راجعه به اینجا پس منو شد که غیبت یک مفهوم عرفیست از کردیم از ابن العربی نرشده قابه یا قابه های قابه ما نرشده ایدکره هاو به خیل اوشن این تفسیر روشن نشد نه قابه لازم نه قابه متعدی این تفسیر انصافاً به خیل اوشن واضح نشد این مطلب بود یعنی خلاصه مطالب قبل رو عرض بکنیم این ثابت نشد و گفته شد در عدی از کتبیشون رو ثابت نشد ظاهراً از ماده غابه از غائب بودن شخصه و این که بشه شخص غائب، این از حیط افتعال در آمده. این از ماده در نمیاد ظاهرم خلاف ظاهرم و اینی که در عده از خطب غیبت رو به کس اسم اثر و به اختیاب گرفتن به ظواهر بهتر میخوره غیبت یعنی غائب بودن شخص و غیبت یعنی ذکر کلامی کلامی که پشت سر شخص گفته میشیم از فنابراین ما یک مفهوم و عرفی داریم ارز با شواهد موجود خوصا در بعضی از روایات ما اینطور آمده که غیبت این است که خلف یک انسان مستور عیب مستور او گفته بشه که اگر عیب ظاهر باشه غیبت نیست غیبت نیست و این عیبم باید باشه اگر نباشه بهتانه ظاهران همینی که در همین رواقی یحیل از رق آمده این ظاهرا مقبول همینه مفهوم مفهوم عرفی ریبت همین باشه لذا بعد مصادیقی رو که مرحوم شیخ بیان میکنه و خودتون حسابشه برسی بعد از شد که اون چیه در مفهوم ریبت مؤثره این از که کلامی باشه که بیان عیب باشه ارز کردیم مرحوم شیلستانی قصد انتقاث هم و هم زد کردو انصافا قصد انتقاث هم ثابت نشد بله عیب بودن هست اون خیر و شر که در کلمات ابن عربی شد اون هم ثابت نشد ظاهران خیلی مطرح نیست شر مطرحه. اون هم ثابت نشد مستور بودن شخص هم ظاهره از درز قیبت ماده درمیاد. و ها کذا مستور بودن ای البته ممکن است ای به لحاظه اون مختلف باشه حتی ای ممکن خلقتی باشه و از مثلا زیر بغلش مثلا یه گوشت زیادی داره که مثلا میبانوسر حاضرم نیست به کسی گفته بشه و ای میدونه و حاضر نیست ظاهرا امور خلقتی غیر خلقتی خلقی خلقی تمام اینها از مسادیق غیبت حساب میشن و در مقابل از پیغمبر اکم ناکن ذکر رو که اخاک ما یک را حبول سمعه که تفسیل دو سه بوزا جبینه ارز کردیم و ارز رو که آی خویی این تفصیل قبول نکردند. و ما تا حالا می گفتیم چون قبول کردن اشار نداره روایت و روایت اخیرا که نگاه کردن نه انصافا روایت روشنی نداره و با وجود اده از روایات از اهل بی در تفسیر قیبت قیبت هیچ اشاره این مضمون نشده و اضافه بر این روایات ضعیفی که در ما نحن هست به نحوی نیست که بتونه جواب پیدا بکنه هم برای شعرت فتوایی روشن نشد ما لاقل احتمالیم شیخ توصی در تفسیر طبیانش از اهل سنت لاقل حدیث اورده باشه ذکر رو کرد اونجا داره ذکر رو که اخاک به ما یک راه الله اصلا، یک راه الله اینه ای باشیم یک راه الله هم تعبیر غریبی شد. و هر حال تا اونجایی که ما الان نگاه کردیم انصافا در دائم در اونستان مثلا اسماییلی ها یا یا فقه ما اونجایی که من نگاه کردم به لذا لزو احتمال اینکه این معنا مشهور باشه حالا روایت ضعيفي نه روایت واحدی داریم که در امانیه شیخ توسیز اون وصیتو نبی لعبیزه تعریف شده وصیتو نبی لعبیزه چند تا متن داره و سند داره ازیاش مختصره شو از سندشم بد نباشه این یکی خیلی مفصل سندشم کمی ضعیف اهل سنت اصلا واضح از آثاری که مرحوم ابو الفضل شیبانی جمع کرده خودام به نزدیک روایت سومیه مجموعه هایی و خود روایت تیکی تیکی است یا عبازر یا عبازر این همش روایتی خیلی <تصفح> اصالید متعدل بزداشه از, از ابو است بزداش از انس بزداش از حبدالله نومره یکی سی ازشون رو به هم چستنده چین روایتی انجبار پیدا نمی کنه. اصلا خودش انجبار پیدا در هر تصریف نباشه در هر تصرف نیست اسات خودی این روایت اینقدر ضعف داره ضعفش هم این نحو خاصیه که حالت جهر داره و مربوط به ما هم نیست مربوط به اهل سنته و هم واضحه پیش ما روایت وصیت نبی لعبی زری که در امالیه شیخ طوسی شما میشه مثل جهر بکنید مثلا در, در 40 تا 50 تا 200 30 تا 300 تا حدیث از پیغمبر بگی یا اوازر یا علی اولش اضافه بکنه مثلا بگی این حدیث از پیغمبر خب به این معنیه مفرداتش هست پس این حدیث کلن از طرق آمه است این هم که این جامعه در حقیقت از طرق آمه است چیزی نیست که از طرق ما باشه ما الان از طرق خودمون پیدا نکردیم یه بحث دیگری بود مرحوم آی گروژه دیم اگر بین آمه معروف باشه و این رفع نکرده باشه اونو میشه قبول بکنیم و این هم مبنای آی گروژه دیشون ما چند بار عرض کردیم ارز کردیم این شواهد می‌خواد. مثلا بین عامه مشهور باشه و ثابت بشه که این شهرت لاعن در مدینه بوده این در نزدعیمه علیه مسلم در مدینه این شهرت بوده شواهد بلو اهل سنت مثلا دلالت بکنه بر شهرتش و فراوانی و اسانید متعدد چه قبول کرد به الا مشکله و این حدیث رو با مراجعی که ما باز دومتر مسادر احران من ظاهرا چند بار گفتیم در صحیح مسلم در صحیح ترمزیه ترمزی تصریح به صحیح آده و صحیح آورده شده بعد روزه صحیح ها. در صحیح مسلم نبود مثل این که ما های شبا نه, نه, نه نبود در مسلم نه نه نبود در مسلم این... این من در بیشتر مخصم تفسیر ابن کسیر شامی که مرد مولایی هست ایشون از مسلمه و دست ترمیزی و بعد مشکل دیگه اینه, اینه که ایشون بعد از اینکه این معنا رو نرمی کنه زدت و ترخواب بعد میگه و به هازا قال ابن عمر و قطاده 3-4 تا از تابعین مجموعاً چهار پنج تا به بده. از این تعبیر و به هزار قال رو ابن عمر در مدینه تأثیر گذار بوده نیمیشه امکار کرد از اینکه میگه به هازا قال خود خودمون مثلا صحابه یا سنی خیلی این بحث را قبول نکردن دکتر که خواب موید را لذا حتی اوی مبنی ها هم مشکل پیدا میکنه دیگه من نمیخوام واضح بحث بشم که چون سندش رو هم که در میان اهل سنده سنده معتبری ثبتیه که از بزرگان مدین هست از ما سادران این شخص نحبون کنه سنده هم هست تو سنده را من چون نمیخوام کل بحث هایی که شده مراجع احراز یعنی در عبارات و اونها که بشن من مثلا چون یکی یعنی خوبی شینه که روایت سنده کامل میاره بعد بررسی میکنه تفسیر میکنه و بجز ائمه شون دیگه بلاخره پیش اونها یه مقداری هم به اصطلاح به قول امامیه مثلا لهاویان میمونه یعنی زد شیعه از ائمه دودو کسایی مخالف شیعه مخالفه لذا کارهای و کارهاش هم خب تاریخش خیلی خوبه جوامع مسانیدش خیلی خوبه این تفسیرش ای هم انصافا خیلی فوایده برای کسی که میخواد با حدیث اهل تفسیر حدیثی آشنا بشه اندازه علمی ما از دور منصوب سیکو کنید میشوند نه علمی تر آورده. این تعبیر و بازداشت قال ابن عمر و قتاده یا پنج داره. صفحه ستیل چهار پنج شر. اسم آورده از این معلوم میشه که خود بین اهل علمای صنعت هم جا یافته بوده. از اون. اون یکیش هم خیلی خیلی مالی نیست و لذا بعد یا واللہی چون ما همیشه میگوییم که این حدیث انصافا قبول این حدیث مشکله و عادتا وقتی که قبول حدیث به لفظش مشکل شد راه دیگری هم وجود داره بگیم اجمالا حدیث رو قبول میکنیم مثلا ذکر رو که اخاب به ما یک رهو یعنی بلعیب. به ما یعنی به عیبه نگیم اطلاق داره هر چیزی که یک اطلاقش قبول چون ثابت نشد وقتی اگر اینجور گرفتیم این حدیث مطابق میشه با همون معنای عرفی که ذکر و انسان مسئول به عیب مسئول این ما تا حالا تمثل به اطلاق ما اینی که میخواستیم این حدیث رو بگیریم تمثل به اطلاق ما یک ره ولو عیب نباشه وقتی حدیث ثابت نشد یا اقل اجمالاً ثابت شد خیلی مثلا با شواهد اینها ثابت وضوح لفظی نشد من خبیلی لفظ ما یک رهو یعنی به عیب ذکر رو که اخاک به عیبه احمد نارده. من از چیز نیاره که همیشون مخصوصا سنده نرده از مسلم. مستدر چیه مسلم؟ مستدر, مستدر احمد فرم داره من کنونت که تو بحثه سال می گفتم دیشب بودم می نقل کرده و از تلمزی نرده و میگه و سهها هم هست تاجور گنج مسلمان شد قطعا متنه که کی ابوهورر است یا آیشه است. ابوهورر و و ابن من هم تو زنام بود چند ده تو زنام اصلی مسلم بود ایشون نعله کرد پس حالا برعکس از آنشون ذهنیت قبلی ما دیشتر که نگاه کردیم بیدیم آقا نرق نمی کنه مسلم تو ذهن من هم تا حالا هم مسلم بود یعنی شهرتش هم مسلم می دارست کیف ماکان از این عبارتی شما با حالا قال ابن آمان از من میشه خیلی شهرتی شهرتی, شهرتی اون تویم بین اونها یه قطیم نیست لذا حدیث رو بعد لطه یا ولتی برفرزم قبول بکنیم هم نشونی کنیم به هر باشه. متعقنش که بله ظاهرا علت اینکه در اصحاب ما این مطلب مشهور شده احتمالا از مسادر متاخته ده. حتی از زمان شیخ هم نیست مخصوصا از این کتاب کشواری مرحوم مرموم شیدسانی قدسان لاحسره که در احکام قیبت نمیشه و نظام حالا ترجیم هستان همیشه ارز بکرم این که میگن شهرت جابره من همیشه ارز بکرم اضافه اضافی بر بحث کبروی یه بحث صغری هم باید بشه که اصلاً شهرت های هست یا نه انصافاً شهرتی وجود نداره اون اشاره جاوذه در مانحنفی شهرتی وجود نداره و اون مقداری هم که پیش ما حدیث اومده فی نفس قابلیت انجبار نداره علایم و سر اینکه بین اصحاب ما مثل شهید وسرتا شیخ انصاری یا ادمای قمری یک مقداری این مطلب جا افتاد به نظر من فقط تأثیر به روایت نیست به نظر خود من تحلیلی که من دارم اینه که مثلا در سهاه جوهری بود به ما یقوم مهول و سمعه که شبیه تعبیر روایت بود و توی ذهنیت و ما این بود که چون سه کتاب لغوی است پس این معنی لغوی قیبته نوشن این به ما یقوم مهول و سمعه دنبال روایت نرفتن خود دقت بکنید قبول علمای ما نه از جهت روایت و اجبار ضعف روایته قبول علمای ما چون در کتب لغت آمده ذهنیت علمای ما این بود که این معنای عرفی و لغوی غیبته البته ارزش کردم کتاب سها انصافاً جوهری وقتی هم صحبت کردیم بسیار نزد مولاییه یعنی معانی که آورده خیلی دقیق انصافا کتاب بسیار خوبی است خیلی زرافت به کار برده مخصوصا اگر عبارتی که ازشو نقل شد متاسفانه عبارتیشون دو جوره یعنی است یعنی خلف انسان مسور بما يقم هو لو این یک متن نیست که شیخ آورده اگر این باشه این به اینه کلام رسول الله تقریبا و اما اگر این نباشه که در لسان عرب هست از کدام انسان مسئول او بما یومه و له سمع اگر اون جور باشه که در لسان عربی جوهر نقل کرده وقت در حقیقت به ذهن ما دو تا معنا کرده یک معنای عرفی و معنای روایی پس سناوند و عرض کنیم اصولا در لغت عرب متأثرند به روایات به جری دینی متأثر این هست رسولان پس سر به این که علمای ما این تفسیر رو قبول کردن به ذهن من این طور میاد چون سه ها هم در قرن آخر قرن چهارو دیگه چون سیزن نمید و پنجه نمید بال برای خودش درست که از بالا هم پرواز مپنه مرد افتاد مرد جوهری این طور منم میکنه عقل تواقیه اون برهو کارد علایه کتابش بسیار کتاب نافعیه بسیار کتاب خوبیه و من احتمال میدم ولی علم و سر این که علماء ما این تفسیر رو قبول کردن فقط به خاطر روایت و انجوار ضعف نبود تصور کردن این معنای لغوی عیبته معنی عرفی قیبته دستازی که این معنای عرفی نیست اگر باشه تعباده پس تا اینجا ما رسیدیم که انصافاً چون تا حالا بنامی ما خودمون بود که این تعباد ثابته معلوم شد که نخیر این تعباد ثابت نیست و انصافاً من که کلی هستم کلران انجبار و اون معنی لغوی هم ثابت نیست تعبد هم ثابت نیست هیچ کدومش ثابت نیست میشه ابوالقاسم بعد ارسلم اسفری 300 و باز 25 و 27 و اینا باز به بحث صوری رو فرمودن بعد مروه شیخ میگه که اگر یک رحله و سمع او باشه قیوت اگر اون رو باشه قیبت نیست آنو دیگه خودشون مراجعه کن دیگه احتیاج به این حرف نیست بعد محلوم شیخ از ظاهر المسرح فی بعض روایات ادم الفرقی زالک الان ما سرح غیر و واحده بین ما کار نقصان فی بدنی نسبی این مطلبی که ایشون فرمودن از ظاهر المسرح فی بعض روایات ما نداریم شهن شیخ قدس الله سره اجل از این ما چی این روایتی که نقصان فی بدن هی نسبی هی خلقی البته ایشون خلقی دارن داره نیدون حالا دا. خلقی نبشته اینجوری این چاپ کرده خلقی اون خلقی در لغت عرب جهت ظاهری انسان رو خلق میگه جهات باطنی رو خلق میگه هم به همین جهت اون وقتی بقولشون روایتی که هست در اون روایی از خلق و خلقش داره هر دو رو داره شیخ یکی آورده اون دو باید اینجوری وجوه الغیبه تبع ا ذکر ای بن فالخلق و الخلق و العقل و الفعل و المعامله و المذهب و الجن اینطوریه این رو مرحوم شیخ مرادش به این روایت المصرحه فی بعضه روایات این روایت نیست این کتاب مصباح شریعه است این عبارات در به امام صادق نسبت داده شده مصباح و شریعه مصباح شریعه خب صد باب شده دیده‌بشین اول باب غالبا یک کلامی از امام صادق میاره بعد مثلا از بزرگان صوفیه قال سفیان صوری قال ابراهیم الاهن قال کلا حالا اینجا یک کلام طولانی از امام ها ورده و یکی از اجرایه بینیم که این کلام رو در کتاب جامعال احادثم پیخوندی نه برده این آنگه خواستن جامعال احادثم این اضافه به این نداره اصلا ما اول تعجب کردیم که کجا این مطلب هست حالا این مطلب توی مصباح و شریع آمده شهید ثانی هم که در قرن دهم از این کتاب گرفته از مصباح و شریع روایت بودن ثابت نیست که ایشون بگه از مسر و از روای ارز کردم در ادهی از تعابیر کتاب نه همه ای کتاب ادهی از تعاویر کتاب مطابق است با کلمات عرفا و صوفیه بود مثلا همون طبقه معلیت سابرا توضیح دادیم همین عبارت مشهور الابودیت و جوهرتون کنن رو در همین کتابیتو دیگر نه همین صد بابه در یک چاپش باب دوبار در یک چاپش باب صدومه این عبارت الابودی الانی که ما یه توضیحاتی یه وقت چند بار ارث کردیم حدود اواخر قرن چهارم و قرن 5 میشه گفت قرن چهارم و پنجم در قرن پنجم اول قرن پنجم مثلا ابو عبد الرحمن که از عذودوان عرفاست خب واقعا معرض فوق العاده‌ای است خیلی آثار علمی داره و تقریبا میشه گفت شاید تا زمان خودش ما به این توسعه‌ای آثار در عرفان عرفان مصطلح نشده باشه میشه تفصیل داره در اون تفسیر خیلی از صادق نام کرده خیلی آثار شما داریشون آثارشون من همده با کنمیز ابو عبدالرحمن سلالی به نظر چه 412 قبل از شیخ مفید الان این که به ماکان و از کلمات زنون مسیح هست مثب شریه هست اده از کتب هست که اینها منصوب از امام صادق روایاتی داره اون چه که الان شواهد ما نشون میده اینها بیشتر در محیط سنی نرد شده از قرن چهارم بعد. و همیشه تقریبا گفت مثلا شاید خیلی از افکار موهدی چی در خصوص شد به اصطلاح فتوحات تقریبا صورت تکامل یافته امی یعنی حرف ابو عبد الرحمن سلمی و اینهاس مثلا خصوص صورت تکامل یافته بعضی از است که از امام صادق مثلا سلام الله نر علیه نرفیده علی حاله وارد این بحثی میخوام بشن این چیزی هست ما منظره نفهمیدیم. این عقده کار کجاست یعنی از 150اه که تقریبا امام صادقه. تا 310 و فات معام تا حالا سال های ۳۱ و ۲ و این ها این یک فاصله ای ۷ ساده هست چیه کی بوده ای وسطا نمیدون نمی شیم. چطور شده این روایات عرفان مستلح مسم جی توسط سنی ها به مرسیده. ما ماشا ا در کافی در باب و هر هج هر جادی هست تک توک روای داریم که تعبیر عرفان مستلح اما خیلی کمه هم خراب بزنن درستی نداره آیا این روایت و همون اساسی بوده این یک قسمت‌هایی است که مبهم‌ها این یک مشکل داره این و الان ما مثلا فرض کتاب ابو عبد الرحمن سلمی داریم ما که ظاهرا منحصر بهشون نیست ظاهرا اینطوره مثلا همین در اول تفسیر قومی از الباء الله و سين و الله این تو تفسیر ابو عبد الرحمن از ما صادر نه کرد چیز عجبه دید. در همین تفسیری در زیل آیه مسقه آمون با اون شرامن تهورا ای برای یوتهر هم من کندشه این خب این تعبیر را ما در کتب خودمون نداریم ابو عبداله همه سلمی نهم کن از ما ساده قال و به اسمون وقت مرحومه مجموعه بیان زیل همین آیه وقتی این میاره بعد از اینکه اینو میاره ایو طاهرهم من کلش انسان الله مهم میشه میگه کدا ربوح و انجرتر محمد بسیاری جمع میاره نشون داده میشه که در دره نشون داده میشه که در همین قرنی که ما الان مثلا این روایت الان فقط در کتاب اربارد دار هم صلحی میدونی الان فقط همونجوری میدونی روایت ایو طاهرهم من کلش انسان الله ازلا طاهر من نصب بشه ابن الاخلاق این روایت ما الان فلسکتاب عبارد رحمان رو سلیم میدونیم لیکن مجموع البیانم من دقیقیم یک کلا روا من اشاره کردم که اگر بخوام بعضی از آهاین این موضوع رو پیگیری کنم که چرا روایات مصطلح ارفان مصطلح در قرن چهاروم و پنجوم از ائمه ما مخصم امام سادر نقل شده و در کتاب های ما نعمده عمده روایت چه هم سنی هم این همه به شرحه و عمده اشکال اینه که انقطاع داره یعنی نمی‌شناسین نه اینکه مثلا دین ضعیفه اون حدیثی در باب حج گفتن من نمی‌خوام بخونم اون حدیث ضعیفه در کافی آمده اون حدیث ضعیفه آیا چی بوده واسه قصه ما هنوز این قسمت رو نمی‌دونیم این عبارت هم تو مصوا شریعه آمده و در کتاب های بروژگی هم تو جمله حدیثی بودن کار خوب نکرن خب خوب بود الان برام مصوا شریعه قابل اعتماد نیست تا خوب بود میوردن در اینجا داره وجود و غیبه تقابل ذکر ایبن فلخ الخلق و الفعل و المعاملات و المذهب اینو اعص کردن عبارته مصواشله در حاشیه این کتاب چاپ کرده از مسترک نعر کردهش از مصواشریه گرفت مطلب درسته اما در روایت نداریم میگه بروم شهید شهید سانی رو او آورده بروم شیخ انصاری اینو به عنوان روایت قیل عمل بدن این چیزهایی که در بدن و فران مثل آقاهایی تا و اما فی یک سفته با خوردید من دیگه نمی کنم قدار کنه آجیه این که داده شده و مخصوصا شاید اولین کسی که این توضیحات داده در مجموعه ور, را، ور رام لیکن مفصلتش در کتاب مرحوم شهید اسلامی در کشپ ریوه در اونجا ایشان آبا صوم نه ظاهرا نصب انکار منصرف الی ذکر اینو از آی خوبی هم خودی که مراده از ذکر رو که اخا یعنی ایشون ذکر رو آورده انیاد کره یا انیث کلم خنه کلام، ذکر نه بخاله بخاطر آیه این که خصوص کلام نیست غیر کلام هم که مثلا بنویسه انسان یا بولموز یا فیلم تهیه بکنه یک فیلم تاییه بکنه ای به مصور یک انسان رو کش بکنه ظاهر استاد نمی کنه به تمام اینه یه توضیحاتی ارز کردیم که در انسان در ظاهر آیات دو نکته به انسان نسبت داده شده یکی بیان یکی لفظ علم و آدم الاسما کلام منصرف هست با آدم اسماء، یعنی اسما لکن وقتی آم نشه حساب بکنیم بیان اعم از کلامه یعنی انسان اصولا قدرت بیان داره یکی از راه های بیانش کلامه اون چیزی که در باب قیبت مهمه بیان نه کلام کنی. مهم کلمات نیست مهم بیانه یعنی انسان توضیح بده روشن بکنه که این شخص داره چه بیر از کاریم اگر اونسی با آیات باشه از ظاهر آیات مبارکه اینه که کلام رو مظهر ربوبیت گرفته که از هر اسمال الهی است و بیان رو مظهری از مظاهر رحمانیت در رحمان قرار انسان علمان بیانه بله. و خیلی هم عجیبه که خر رحمان خر انسان علمه و یا بین علمه و خلق نه واو ورده نه فا با اینکه در مورد انما امر الالهی ان قل لو کن فیکون الف و لا غره ورده کن فیکون یک فا و در اصل به آن در مقام حالا کار به مقام واقع نداره اما در اینجا یک فایی هم نداره واوی هم نداره که این معناش واهمه میشه که این علمه بیان در صلب بخرد خلقتون میشه. و اسناد داره به مظهر خالقیت رحمانیت که بعض از آیون بعد اسم الله اونه به خلاف اسم که از هر اسم الله الانی که به ماکان ایشون مخواد بگن که مراد از عدل قیبت اون جنبه بیان شما به هر نحوی مخواد بیان رو باشه یا به لفظ باشه. نه اینکه جنبه لفظی باشه درسته این مطلب درسته مرموم آقای خوی نوشته او در نوشتنی مطلب درست همونجور درست هم میشه ایشون من جمله بعد مرموم شیخ منداله که المبالقتو برفی تهجین المطلب راسته ایشونه ای که میم در دل فرمیدن علما ای از علما اینطوریه که وقتی میخواین یک مطلبی رو خیلی بیارن میگه. مثلا این است که لایق و عالت طلبه فزن لایق و عالت اوائل مثلا یا بدی یا بطلان مثلا ایشون میگه این هم غیبت راسته خود انصافن خود شیخ هم در کتاب رسال و مکاسب گاهی تعبیر میکنه مازکره و بعضون که مثلا آدم خیال میکنه مثلا تعبیره و مرادشم اصلادشم هم نراقیه حالا چون شیخ خودش اعتراض میکنه ما اعتراض رو خود خودش یک جا شاید ما دییم که یه مقداری تون رفته شیخ الا انصافن خود محوم شیخ قدس الله رفت نفسه بسیار معدد حنصافش اینه باید قبول میکنی و بعضی از آی که بعد از ایشون آمدن حتی نصف به ایشون گاهی الفاظ بدی به کار بردن دیگه از اینشون میگه نه توپیده گاهی هم میگه بعضان یکی یا دو مورد نه زیاده سراسر نیست اما بله مثلا در کلمات آی خویی زیاد تأچیب آور هست مثلا و قالت محقق و بعد میگه و حالا کلام آن لایین فیلم مساعدت علیه به وجه نسدن خب بدیهی و البطلان. بطلان و قدیقون و بدیهی کلام خب چو اول میگه محقق و فلان <تصفيق> بدیهی و البطلان به محقق نمیگن اولیش و دوبار میشنم مبوردی پیدا نشست که مکاسه فرمایش حساب جواهل رو قبول کنه برموشه؟ خب تعمد داره به کوبی نه؟ نه نداره. تعم <تصفح> البته شیخ در رسائل انساب و استادش مرحوم نراقی هم خیلی قبول نداره و انصافا هم خب شیخ قبیح قبیح انصافا قبیح حالا نمیخوام معنیش این باشه که انساب جواهر انصافا, به انصافاً تو بحث مکاسب خیلی متأثر بود به کلمات شیخ جعفر کبیر و دیگران در بحث مکاسبش خب خیلی قبیه بعض از مشایخ من مرحومای بزرگونی می‌فهمند که به نظر من البته معروفه که در طهارت و سلات ها جواهب بهتر در مکاسه برو شیخ ایشون فعلا نه در همون تالات و سلاتش هم زرافت داره که در جواهر نیست به هر حال شیخ پوغراد هست چون شیخ واقعا که فکر میکرده انصافت و مرد اون جانب تقویش هم خیلی در ایشان مؤثر بوده رزوان لا تاله این به هر حال این مطلب راست یعنی انصافت خوب نیست ارز کردم بیروزم بعد از بحث مرحوم شیخ مفید اگه این رساله ی صاحب نوین مالیشون باشه خیلی عبارات توندی نسبت به مرحوم شیخ صدوق استادش داره و حتی نمیخواد الله یوازتون واقعا ارزمیکنه اینکه حالا مصاحه تن صلاح نبود مرحوم شیخ مفید کتابی رو که در نقض عقاید اعتقادات شیخ صدوق حالا غیر از اینکه شیخ صدوق استاد ایشونه در از اعلام طایفه است که شیخ میشه شیخ صدوق کتابش گذشته علی اعتقادات ایشون نشه تصحیح اعتقاد یعنی اعتقاد شما فاصله میخوام درستش بگم <تصفح> باطل با... خب خب طوند این عبارت مناسب است انسان با یکی از بزرگان طائفه چین تعبیر رو به کار داره میگه تصحیح الاعتقاد خود عنوان کتاب خوب نیست حالا ببینید در خود کتاب کتابم چند جا به شیخ صدوق هم می کنه اضافه بر او خود عنوان خوب نیست معروف میشه قوهایم قتیبی ایو ابن سلیمان قتیفی در رساله‌ای که مرد فاضلی است ولی نیست انسان الان خیلی فاضلی خاصه اما خیلی به محقق کرکی حملات بدی میکنه خیلی زیاد و نفی علم و ورع و تقوا ان خب انصافا محقق کرکی مرد بزرگیه اصلا کسی حق خودش یالو بعضی معترضان گفتن علم و اندیشی از نظر اون حد نیست اما به هر حال مرد فوق العاده است بر اون اما این طول هم که این عای فاضل ماصلیش معوم قطفی ظاهرا هم مسله سیاسی بوده و فکریم به علمی کسی قبول بکنه اینطور الفاظ تند دور. حالا فریم محرووم محقق ارزیبی هم همون زمان وایش مخالف اما خیلی معودب خیلی مرراات میکنه خیلی با تعابیر رو سنگین بهکار این راست ایشون این مطلب مطلب خوبی نیست یعنی انصافا تعابر خوبی نیست. خود مرموم ابن ادریس از جد مادری شیخ توسی در سرایت چند جانگه شیخ العاجم بعض شیخ العاجم شیخ, شیخ توسی جد خب این ها خوبی نیست که در این کتاب های علمی ما بیان و اله آخری درول منصور نوی شیدستانی با این مرموم سال کفایی ذخیره مرموم فاضل خورستانی و اول آدام مرموم سبزواری بد بوده خیلی به شهانت میکنه این صاحب در مرموم منصول. سی یک شیزهای نوشیدم خنده شدید. یعنی از شدت گفت نشانه البالیات ما یوزش کنیم خنده شدید. از باوشانه البالیات. سوم من دوا عربی به کسی را تونست کردم در کتبه اخلاقی این مطلب آمده. البته این کتاب مصباح و شریعه هم تو مصباح شریعه آمده. می‌دونم شک قدمت الله نفسی این هم از مصباح و شریعه آورده بعد از مسوا چون این دوا در کتبه اخلاقی که آمده در بین اهل و شیعه جدای تقریبا همون شرح مصباح شد نیست اما نازل بود نیستن ارز کردم در کتاب غزالی احیال علوم احیال علوم رسلی ایشون هم دوایی قیبت رو آورده در بحث قیبت خوب وارد شده و, و رویان مولان سادر از تنبیه ها علیه ها اجمانه البته شن شیخ اجل من اون اون شیخ چونه این کار در کشور ریبه بوده شیخ این کاره این کتاب مسوال شریعت نه مسأله از امام مصدقه نسبت بدهی روبیانو این فقط در تشپل ریبه هست یعنی در کتاب مصباح شریعه است اصل ریبه تاتناب و او باشش تانوا شفا و غیزه و مساعدت قوم اول آخر آیه مراجعه دیشی نیست که ما میخوایم بگیم مرهمای خویی چی دو تا بله نکته دیگری گفتن که تقدیم شریفونم شیخ انصاری که بعضی افراد هستن وقتی مخالی قیبتی بکنه یک کمی بوی شرعی هم بشیم اون بدتر یعنی سعی میکنه اصلا بگنم من وظیفم میدارم که این قیبتی یعنی جوری هم اضافهش میکنه که بله از اون حالتش بله برداره انصافا آیا هم تشریح نکتهی گفته اینا تو کتاب قزدالی هم آمده بعدها هم در مسادر ما در مثل کتاب مرحوم احیال اونو احیال اونو نه محد معرفی خیلی از عبارات خود خودش ابو حامد قلاله وامه خیلی از عبارات غزالی هم بعد از روایت ما مرده خودش هم تفسیری داره عین کتاب احیاء العلوم از راه شیعه وارد شده البته خیلی اباظیشون نرم کار خوبی هم هست انصافا بینا بین الله کار بسیار خوبیه چه به عنوان یک تعلیف مستقل و اگرم انسان بخواد حفظ امانت علمی بیشتر بشه مثلا در زمان ما این کتاب اهیال و علوم رو در بالا چاپ می‌کنه در پایین مبانی شعر می‌دی خیلی خوبه راست کردم که یه کتابی داره ابن قیم به نام زاد المعادل حدی خیر ایشون تمام سیره عملی رسول الله را نقل کرده دیگه اینکه چجوری می‌خوابیدن چی چجور بالا میشنن دست چپ می‌خوابیدن دست را. وقتی بالا میشنن چی می‌گفتن بعد چطور وضو می‌گرفتن بعد کجا می‌رفتن بعد نماز مستحب می‌خوندن بعد می‌خوابیدن تمام این سیره عملی و اون که مربوط به زدیگی عمد چند تا عصب باشن چمچی داشن چند تا باشن. تمامی چیزی سفر میرفتن در وقت سفر چی میگفتن چهار جلده در دو مجلد چاپ شده چاپ های زیادی داره بسیار کتاب نافری، اضافه بر این عمل عمد چون خودش مرد حدیث شناس در حد صاحب نظر ایشون در حد حدیث در حد صاحب نظر ایشون تو حدیث انصافه مرد صاحب نظ ایشون اضافه در اون آن جام وارد بحث علمی شدند خود ابن قبیح غیر از سیره عملی، سیره قولی رو هم بحث کرده بسیار کتاب نافعی یه چیز انسان ش... کاش چیزی از قلمشون شبیه می‌نوشتن هم اون چیزی البته آیه مرحوم های الله طواتی دارن سنی چاکرن سن خب این فقط متون روایت بودن رو خیلی نسبت به اون کتاب خیلی ضعیف حساب میشه چون خدای تواتبی در مباحث حدیث هم وارد نمیشن یا حالا وارد نبودهم ورود نداره اون خودشون حدیث شناس هستن این قسمت ها هم وارد شده واسه یه قسمتش طب و نبیه رو روی روایات رو روی تبر رو خیلی هم زحمت کشید یه قسمت از آن زادالمعادش اگه همین کتاب رو یا مثل همین کاری که مرحوم فیسردن شبیه این رو ما رو ائمه بیاریم یا همین راهی رو که من عرض کردم این کتاب چاپ بشه یک کتابی هست مال عبدالقادر عود التشريع الجنائي في الاسلام خب کتاب قشنگی هم نوشته انصافا دو جلد مرحوم آیه عاصم اسماعیل برادر مرحوم آیه اسوان باقر سر ایشون آرا ی شیعه در او چاپ کرده با او چاپ شده این راه راه خوبیه انصافا مجموعه راه خوبیه این راهها برای به اصطلاح آشنایی و مقایسه کردن بین مذاهب اسلامی و رسیدن به اون غزره های یک مقداری از این مطالب کتاب غزالی هم در کتاب احیال علوم آمده خب در اینجا چون در روایت مصباح بوده اونم نوشه آیه خوی هم مکاتی نوشن البته این نحوه نگارش عوامل و دوایی غیبت بیشتر رو همون راه که در اصول اخلاقی قدیم مطرح بوده ممکن از همین بحث دوایی غیبت رو ما از راه مفاهیم قرآنی که تمام گناهان رو ارجاع به شرک میده، حالا شرک انقاعدی یا شرک عملی، ما اصلا راه دیگری برای دواعی غیبت پیدا بکنه. غیر از این راهی که الان فرض در جامع ائماد من اون راهی آورده، معراج الصادق پسرش آورده، غزالی اصلش آورده، کشوری میوه آورده و از کدم اصل, اصل اصل اصل تا اونجایی که ما بهش مسلوب به صادق در مصادر اهل نه تو مصادر ما نداریم. این نقطه رو دقیقا مثلا مثل همینجا دوائی قیبت رو سنیا از امان ساله ما نداره. با اینکه این ارفان و مستلح هم نیست تو همه مثل واشری کردن ریشه های این بحث ها و رسیننه به نتائج راجبی این بحث ها بسیار به من مرحث مفیدیه بقیه الکلام فیانهو یعتبر حضور مخاطبه تقریبا این مطالبی بوده که گذشته دیگه احتیاج به تکرار نداره ما کلی مطلب رو بیان کردیم فردا ان تا الله تعالی کفاره و عذر هم که بعدش ان شاء الله مراجعه در الله علیه و آله طاهرین